بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم هو العلم الدرس الثامن آخر الزمان الف ثقافه انتظار الفرج با رجوعا ما در طی این درس راجع به حوادثی که در آخر الزمان اتفاق می افتد و ما و شما هم فعلا تقریبا در آخر الزمان قرار داریم رو خواهیم خواند در آخر الزمان یعنی اینجا این آخر الزمانی که اومدم منظور بعد از به شهادت رسیدن امام اسکریالی حسلاط و السلام هست. فکر می کنیم امام اسکریالی حسلاط السلام در سال 26 به شهادت می رسند. 26 هجری کناری. و امام عسراالی حسلاط و السلام در سال 255 به دنیا می 5 سال محضر مبارک پدرشون رو در می‌کنم بعد از 5 سال در سال 260 هجری امام علی سلام به شهادت رسیدن حالا 260 از 1443 اگر کم کنیم چند می‌مونه 1190 چند می‌مونه کار <تص> کردن چیکار 1260 1260 می‌مونه یعنی باید امام عصر علیه السلام تا کنون هزار و چند ساله شده باشند؟ هزار و چند دو و دوسته ساله شده باشند درست شد؟ در زمان سابق سن زیاد بودن، عمر مردم زیاد بودن. خواب حضرت نوح نبی نهزد و چند سال داشتند نهزد و شست بودند؟ دقیق نم درمون تا بیشتر رو چند سد؟ نو سد فکسن؟ خواب نظر بر احضی و احضی عقیق سار درست و بقیه هم همین طوریست حضرت خیزر نبی اولا ولادتش که اجنام دنیم که تا هنوز زنده هستند. حضرت ایسای مسیح علیه سلام تا هنوز زنده هستن و ایمام عصر علیه سلات و سلام هم تا هنوز زنده هستند؟ و اینها تا قیامت زنده هستند تا فعلا ما در دوران غیبت زندگی میکنیم یعنی در, در دوران اکمال سلام آره احسن غایب هست آه. درست خب، در این دوران ما چگونه باید باشیم حالیف ثقافت انتبار الفرج فرهنگ انتظار فرج ثقافت یعنی فرهنگ بله. فرهنگ انتظار فرهنگ بخور میکنین بخونم کتاب رو. این الامام الحجه المهدی عجلال الله تعالی رجوع شریف حیون و قائدون عن الابصار امان علیه السلات و السلام بدون شکل حی و زنده هستند ولیکن غایبون عن الابصار از دیدنهای به شکل عادی غایب هست دیدنهای به شکل عادی؟, عادی، بله زندوده؟ حی یعنی زندوده؟ اپسار دیدنهای عادی بدون شکل زنده هستند و؟ آه نظرها غایب از نظرها از دیدن‌های به شکل عادی غایب از دیدن‌های به شکل عادی آدی آره. آدی. دیدن عادی دیدن‌های به شکل عادی غایب هستند به شکلی عادی که میگم منظور ما اینه که مثلا ما شما حالا اگر اراده کنیم که امام را البت محضرش مشرف بشویم به شکلی عادی به شکل عادی قایب هستند دقت کنیم توضیح میدیم ما شما فعلا اگر بخوایم امام را ببینیم متاسفانه نمیتوانیم ما شما اگر بخوایم امام را ببینیم و به محضرش مشرف بشریم این کار متاسفانه به شکل عادی نیه اما اگر یک کمنگ رو تلاش کنیم خیلی همساده به محضرش می توانیم مشرف بشیم و حتی خود ایمان صلی اللہ وسلم هم به دیدن ما می آینیم که دستا؟ یک داستان را زیاد نخل کردیم دوست داریم به شما امروز بگیم و تمام آیتون از مای سیستانی رو می شناسیم؟ خیلی آیند ایشان پدرش ظاهرم پدرش چهل شب چهارشنبه به با خودش تعهد میکنه که در چهل مسجد شب را سپری کند تا به زیارت حضرت نائل بشه پدر آتولازمی سستانی در یکی از شب ها وقتی می در یک مسجد باشه می که یکی از حولی ها یک خالت نورانی است درست بعد ایشان از مسجد یا محوتی مسجد بیرون میشه همون طرح ما رو به خانه می که ها یک نفر فاوت تو متوجه شدیم یک نفر فاوت کردم خب به هر حال همتر وقتی از صاحب خانه اجازه می گیرد وارد میشه می بینه که از این مثلا اتاق کم پیشتر مرد می بینه که اونجا جنازه هست و امام علی سلاط سلام هم درون همه اتاق هست متوجه شده چه میگه امام درون اتاق هست بعد امام علیه سلات و سلام به پدر آتول از میگه اشاره میکنه به همون جنازه میگه مانند این باشید که ما به سراغ شما بیاییم نه که شما به سراغ از ما بییم برای مانند این باشید که ما به سراغ شما بیاییم جنازه را میبینم که یک خانوم است از قضا بخید میکنید؟ یک خانوم هست بعد سوال میکنه که این خانم چی کرده که شمای امام در این قسمت شرف امام به سر جنازه شن آمده نه امام سر جنازه آدم بید امام در نسبه شرف خب بعد امام علیه السلام نفرمایه میگه در زمان رزاشوه بوده که کی بودن ایران گفته بود که ها رو برداره در افغانستان هم یک زمان هم توری شده بود در ایران هم کشف الحجاب یا کشف حجاب معروفه دیگه به قد آ رضا شاه پهلوی امام میگه در اون زمان این خانم با مدت 7 سال از خانق بور نشد چرا به خاطر که خب دستوری بود که باید به حجاب مردم بیرون بشه ولی این خانم به خاطر که به حجاب بیرون نشه در خانه خوانی مدت هفت سال دقیق، حالا یکم چیم؟ هفت سال خیلی 90 نوات رزه منطوری که هفت سال بودن با مدت هفت سال در خانه نشستم. شستن بعد از هفت سال و پایان مسئله رضا شاید خب، حالا معلومه دیگه ایران و افغانستان در صدد حجاب هستن درست خب ببین این چیه معنی این یک بعد از مردن هست معنی اینه که ما امه و السلام رو می توانیم ببینیم ولی به شرطه که یک کمه بریم درست خب ولی به شکل عادی اگر این می لحظه ما شما ایراده کنیم متاسفانه مقدور نیستیم برای سار نمیتونیم ایمام را ببینیم، با من توجه کنیم یک نفل دیگه رو هم داشته باشیم که امروز خواندیم امروز خواندیم به شما بگیم و پیش کردیم یکی از مراجع تقلید که الان نمیشم لحظه <مترض> در ذهن است خب از, از دوران زندگیشان اینطوره نقل کردن گفتن اشان یک زمانی از نجف اشرف و قاخست فکر میکنیم رفت حله نجف اشرف خماشا میدنیم در عراق هست این شهر دیگه هم است از اونجا رفت دو اون شهر و چون مرجه تقلید بود معروف بود وقتی که اونجا رسید دیگه مردم خیلی استقبال کردند. وقت استقبال کرد خب حالا قرار است که این مرجعی تقلیدی شعند اون زمان که مرجعی تقلید از زمان اون روزی کده به مراتب جارگایشان بالا بود آدم الحمدلله خوبن ولی متاسبونه کم بهز وقت قرار میشن خب دقت میکنی چه میگیم؟ بعد وقتی در اون شهر رفت مردم استقبال کرد خیلی ها می گفتند که باید خانه از ما بید چون وقتی یک مرژه خانه یک نفر باره دیگه او خودش کلان شرافت دیگه کلان افتخار آره دیگه همتون. آره و راستی هم همونطور ما و شما عقیده ما بر اینه که مر... مراجع تقلید وکیل و نایب, اماما. وقت نایب امام ها وقتی نایب امام در خانه آدم بید دیگه از که چیزی با افتخار نمیشه دیگه نمیشه واکن بر مراجع تخمید این اعتقاد رو باید داشت و حفظ کرد و از همین طریق باید به با امام وصل شد که به خدا از طریق ماشین امروز وصل میشه و الا اگر این مسئله مرجعیت رو به این باور نباشیم ارتباط ما با خدا نخواست قراره میدونین چرا چون ما شما مرتبطین با مراجع مرجع با امام امام با پیامبر پیامبر با خدا این ای ارتباط مهاشون با خدا میرسه. رسید و ایلا ارتباط خدا نفسی قرد می یعنی اعتقاد مهاشون است به هر حال ولی این مرجع تقلید از یک نفر نام می گرفت گفت خانه از او کجا هست؟ اون نفر را دیگه اون مردم نمی شناخت <تصفيق> این مرجع تقلید نام از اون نفر رو می گرفت خانه از کجا مردم نمی شناخت. خب بعد از این جسوجو، جسوجو همون مردم جسوجو کردن دیدن که یک آدم خیلی ساده، یک آدم عادی است. خب معروف هم نیست میگن دیگه مردم نمیشناسند. خب، چون نفر عادی بود، دیگه مردم به این مرجع تقلید اصرار کردن که خانی از این نرو. چون چون تو یک مرجع شیعی هستی، مرجع کل جهان شیعی هستی. خانه یک آدمی، چون این خود نیست باید در خانه یکی از کلانه هم مثلا دارید، درست شد؟ عزویشم گذشته چون مرجعی شیعی هستیم، مردم به دیداره کمه یا چیم نه، خانه ازی جایی میسته، نمیشه خانه ازی بوده این مرجع به مردم فرموده که شما هر جای گفتین من همونجام میاییم برای دید و ولی قرار به خانه که بشه یعنی شب باید خانه جالی و دیگه اون نفر رو خود مرجه تقلیل هم نمی دانه و نمی و مردم هم اتا نمی شناسه که همزو منطقه هستن خب به هر حال چون اصرار زیاد کرد دیگه مردم چیزی نگفتن و هم مرجه تقلیل دیگه به هر حال وعده دید و بازد مردم جای و این مرجه رفت خانه از این نفر وقتی خانه از این نفر رفت اینجا سوال ایجاد میشنه، بعدا ظاهرم از این مرج سوال کردند که چرا شما اصرار کردیم که اون شب خانه از او نفر دادیم. اون نفره که ن نز نظر مالی ووزش خوبه و ن خوب نظر نز خانه ووزش خوبه، من چطور خانه از اورففت این مجب بود که ما رو ایمان دستور داده بود که خانه از او نفر دا. ورس ایمان دستورداد. و خودی از او نفرم وقتی که، از این مرجع سوال میکنه که چطور خانه از ما آمده واقعا تحجیب آمدید و دیگه یک آدم ساده بایم یک مرجع کلام در خانش بیه باز اون مرجه باش که ما رو امام دستور داره در خانش مو وقتی این حرف را مشناه خب گریان میکنه طبیلیست بیم برای گریان میکنه خب به هر حال بیبین اینه برای چی گفتیم برای اینه که در زمان فعلی هم و دو زمان هم بوده. ما شما نیتونیم با امام وصل باشیم وصل شویم امام را ببینیم ولی ولی ولی بیدنیم. برست درست؟ خب نکته چیست؟ و قائب عن الابصار امام غایب است از های معمولی و عادی درست؟ نه که کاملا غایب باشه که ایج نتونیم ببینیم درست؟ و سی از الله تعالی فی آخر زمان و خداوند متعال در آخر زمان امام علیه السلام را ظاهر خواهد فرمود رشد و سی یعنی ظاهر خواهد فرمود امام علیه السلام را که الله متعال کن فی آخر الزمان در اون وقت که زمان به آخر رسیده باشه برای شد؟ از یعنی ظاهر می سازد امام علیه السلام را الله متعال فی آخر الزمان، در آخر الزمان سعی شد؟ او آخر زمان دیگه چی اصافه هست درش؟ وعده ما ملعت دنیا ظلم و جورا در آخر زمان آن وقت که دنیا مملو میشه ملعت یعنی مملو میشه پر میشه از ظلم و جور مملو امام علی سلام آن هنگامی ظهور میکنه که دنیا پر از ظلم و جور میشن چرا او او امام که ظهور میکنه واسه چیکار میکنه لیملاها لیملاها عدل و قسطا تا که یملاها بازم امامت یعنی پول تا پر کند امام علیه السلام همو دنیای پر از ظلم و جور را از چی پر کند؟ از عد و قسط و داد لی املاها تا پر کند, کند امام علیه السلام همو دنیای پر از ظلم و جور را پر از عد و قسط و نحن منتظرون لبهور شریف و نحن رو گفته بودیم و ما منتظران هم ظهور شریف حضرتش هستم بایدم باشیم بایدم باشیم خب اینجا یک نکته آدم منتظر از خود وزیفه هایی داره. روز شنبه که آمدین و ضعیف آدم منتظر را شما خواهیم خواهیم اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعلنا من امصاره و اعوانه. ترجمه این دعا را هم از شما خواهیم. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل من اصاره وحبه ترجمه دعا؟ دعا یعنی؟ کارخانه که ترجمه دعا و دیگه چه؟ ترجمه دعا و چه؟ دعا و وضعیف منتظر صحیح شد؟ قسمت بعدی را زود و سره بخونیم و تمام کنیم با الرجعه ببینیم امال اسلام در آخر الزامان وقت زهور کرد در همو زمان یک ایده از مردمی که قبلا نمرده دوباره زنده میشه. پنور بیش میکن رجعت دوباره زنده میشود. دوباره زنده میشن؟ در همه دنیا. بله. دوباره زنده شدن؟ بله. مردمشیه قبل نمرده. بله بله. خب متن نبی خانی. خب ما میخوانید چون وقت تماما شما آگاز یک نفر اگر نویشته کردیم کافیست انشالله دیگان بینویسین آره وحی الحیات الثانیه الدنیاویه این رجعت چیست؟ رجعت زندگانیه دوباره دنیاییست الرجعت وحیه با اون رجعت الحیات زندگانی آسانیه دومی الدنیاویه دنیایی هم رجعت زندگانی دوباره دنیایی است برای کلی نه لبعض الناس برای بعض از مردم کای فی آخر الزمان در آخر زمان و فی عصر الامام المهدی صاحب العصر و الزمان در عصر امام دیگران السلام درست شد سعی شد؟ آه. خب سؤال چرا این مردم دوباره زنده میشن؟ لکیوتی بالمحسنون على احسانه تا ثوابش را آدم محسن و نیکوکار بخاطر خاطر که کرده در همه دنیا بهرمند شو چی برسه به قیامت انسان احسانه به خاطر کار احسان و نیکی کنه یعنی تا ثواب اون کار خودش کای لکای یوسیب تا ثواب ببره بهرمند شود بهرمند شود المحسن آدم محسن آدم نیکوکار على احسانه به خاطر احسانی که کردن بهرمند شود و یجزی المسیعو به ما اساعه و جزا ببیند آدم بدکار خاطر امون اساعه که کردن منصیت که کردن فی ها دنیا ایواند آدم موسی مسیت کار آدم بدکار به ما اساعه بخاطر بدی که کردن فی ها ذه دنیا ایزن دمزی دنیا هم هم در, در همه دنیا هم, هم. خب ببینیم خب ما و شما یه بار خود داریم که در روز قیامت آدم خوب خوب آلش آدم بعد هم بر. سه شد ولی در آخر زمان یک تعداد از آدم ها زنده میشه تا آدم دنیا خوبی خود ببینه هم نوبادهاش بدی خود ببینه خب سوال اینه کی زنده میشه بر اساس اون به من رسیده یعنی ما تا میسیم علم پیدا کدیم آدمایی که خیلی خوبن زنده میشه و آدمایی که خیلی بدن زنده میشه ولی آدمایی که بین خوب و بد اون زنده ما دعا دیگ هم جواب دنیا که رجعت میشه بله که که الله على سيدنا محمد و آله الطاهر